صف بخش پم روزنامه رو داد به من بخوانم و سر مطلب آن مدتی درباره استبدادی که در ایران ح فرماس برای من حکایت کرد وقتی حرف میزد تمام بدنش می دررزید چشمایش گرد و فروزان می هرچند لحظه چنگ میاناندخت و ظرف رام نشدننیش را از پیشانی اش رد میکرد و به عقب میزد یک دستش را در جیبش میکرد و با دست دیگر میکوشید به کلماتی که از دهانش خارج میشد صورت و هیکل بدهد پنج انگشت دست راستش دائما در هوا به شکلهای گوناگونی در میآمد گاهی روی صندلی که نشسته بود با یک حرکت شدید خودش را پرت میکرد به پشتی صندلی گویی از دور بهتر میتوانست مرا تحت نفوذ درآورد پا روی پا میانداخت آن وقت ملایم تر میشد ناگهان از جا میجست هر دو دستش را رو روی دسته صندلی فشار میداد و بدنش را در هوا معلق نگه می داشت و حرف میزد این جوان یک پارچه آتش و یک بسته قذب بود من چنان خود را به او نزدیک و بیرو در وایسی و صمیمی حس میکردم که تا آن روز برای من بی سابقه بود آهنگ صدای برنده و تیزش تنین میانداخت مثل چکوشی که به فلز بخورد این همه جوش و قلیان هرگز در کسی ندیده بودم مدتی درباره اوضاع ایران گفتگو کرد از جنایاتی که مرتکب میشوند از فساد و رشو خاری هر زد. از ثروتی که به دست بچه های اعیان امثال من از کشور خارج می شود از بیگناهانی که در زندان میمیرند از رجالی که فدای هوا و حبس مال پرستی شاه میشوند از اشاعه بی ایمانی و تذویر و ریا از نفوذ انگلیسی ها که تمام این رجال خیمه شب را به بازی میگیرند لاگرهان کمی مکس می کرد و اشاری به زندگی من می کرد مثلا می گفت آن وقت من و شما در پاریس ول میگردیم این مردم را می دزدیم و دور میریزیم هیچ تا به حال فکر کردید که زندگی من و شما از کجا تامین می شود من ساکت بودم و واقعا گاهی شرمندگی اسم میکردم گویی در تمام این جنایات من هم شریکم و مسئولیت دارم آن وقت من از خودم صحبت کردم از اینکه در مدرسه هنرهای زیبا و محیط دانشویان ایرانی چگونه همه مرا ذله کردند و از اینکه بی استعداد هستم و از کار خود ناراضی هم. راجب به استاد صحبت کردم و او را مقصر دانستم. او مرا را فادر ساخت به فرنگستان بیایم. او می توانست به من درس نقاشی بدهد. و به زبانی که هر معلمی باید با آن آشنا باشد به من بگوید که نقاشی جز تفری چیز دیگری هم هست و من نباید زندگی خودم را برای کاری که جهت آن ساخته نشدم فدا کنم. بالاخره گفتم آخر از من چه ساخته است؟ اوه همه چیز؟ در شد و مهربانو با چند باشقا با کارد و چنگال به با اتاق آمد و دعوا کرد تو که هیچ کاری نکرده‌ای یالو بلند شو سفره را پهن کن رو میزی توی گنجه است میز درست کن تا من چای و پنیر بیاورم من از جایم بلند شدم گفتم مهری خانم بدهید به من من درست میکنم شما بروید باقی‌اش را بیاورید این مرد مرا مرعوب کرده بود میترسیدم به او نگاه کنم که الان می‌ترسم به شما نگاه کنم زن ناشناس یک مرتبه حرفش را قطع کرد. آهی از تای دل کشید. آب درخشانی چشمایش را ترک کرده بود. اشک نبود. این زنگاهی خودش را فراموش می کرد. من نمیدانم چرا ناگهان خاموشی گازید و نخواستم رشته خاطرات او را ببارم. چند لحظه به من خیره نگاه کرد. اما من چشم بر زمین میانداختم. راست می گفت. نگاه او پر از دابه بود. با وجود این نمیخواستم این نگاه را هم ببینم. باز از ناشروع کرد. مرد عجیبی هستید شما. نمیدانم برای چه دارم داستان زندگی خودم را به شما میگویم. همش همش همهش نیست. به من نگاه کنید. چه واهمه ای دارید؟ من دارم ته دلم را برای شما خالی میکنم. آخر نگاه کنید از چشمایی من میفهمید که من راست میگویم یا دروغ. دیگران آن قدرتی که تصور میکنید در من نیست میدانید من چه جور آدمی هستم من آن چیزی هستم که مردم معمولا آدم ظالم مینامند تمام نیروی من فقط تا وقتی است که با از خود ضعیفتری روبرو هستم وقتی با شخصیتی بزرگتر از خود مواجه میشوم دیگر هیچ چیز ندارم و ناتوانی خود را تا به حدی که باید به بیچارگی من رقت بیاورید احساس میکنم استاد شما تا وقتی ماتیه من بود ماتی نه ماتی خوب اصطلاحی نیست او هیچ وقت مطی هیچ کس نبود است تا وقتی که من برای استاد علستویه بودم تا آن وقت با او بازی می کردم اما ناگهان همین که نیروی بزرگتری از نیروی زیبایی و هرچه شما اسمش رو می بگذارید قوه مافوق ولنگاری بر تمام هستی من تسلط یافت و زندگی با خشونت و بیرحمیش مرا در قرق انداخت دیگر من از خود اراده و اختیاری نداشتم. من باد بادکی بودم که در حواش نامی کردم. قافل از آن که سر نخ در دست بچه ورگرد شروری است. میفهمید چه می بگویم. در آن ایام هرگز به این حقیقت ترخ پی نبردم. تصور می کردم که تمام حرکات و به میل و اراده خودم است. امروز میکوشم که آن احساس گنگو از هم آن روز را در قالبی بریزم. خداداد هم از من قویتر بود. این قلب رعوف و انسان دوستی بی حد و حسرش مرا مفتون کرده بود و من نمی توانستم در مقابل او مقاومت کنم. چرا می گویم احساس و از هم پاشیده؟ برای اینکه صحیح است که نفوذ اخلاقی او در زندگی من موثر بود. اما هنوز فشار شخصیت او بر من به اندازه عظمت و جلال و استاد نبود. هنوز وجود من سوخت و خاکستر نشده بود. من مارید خداداد شدم و میخواستم به هر قیمت شده به او کمک کنم. به آنچه او به من میگفت ایمان و عقیده نداشتم اما میخواستم مورد احترام او باشم. مرد با بایرادهی بود. قصد نداشت مرا فریب بدهد. هر بار که به من دستوری میداد، مرا به خطری که در زندگی ممکن بود رخ دهد متوجه میکرد. اما او هم نمیتوانست در یک شیشه, شیشه گرخانه بیش از حد استقامتش مایه گداخته بریزد. پس از یکی دو هفته به حدی با او دوست و صمی می بودم بودم کهمهربانو میامد و پیش من درد دل میکرد. چه زندگی پرتلات اینها داشتند در عین حال همه وخشاد و خندان و خوشنود بودند. مبارزه آنها را آرام کرده بود چقدر تأسف میخورم؟ اگر آنچه امروز میدانم آن روز میدانستم دیگر امشب زن بدبختی پیش شما نشسته نبود و تابلو چشمهایش دیگر وجود نداشت و شاید استاد هم زنده بود معنای این جمله این نیست که من او را کشتم نه معنایش این است که او هم خودش را به کشتن داد و هم مرا خدا داد در مقابل استاد ماکان از خود گذشته بود همه چیز خود را مدیون او میدانست. اساسا در صفوف این جوانان از خود گذشته در پاریس من خاصیتهایی دیدم که عینا نظیر آن چیزی است که در کتاب دوران گذشته میخوانیم. اینها وقتی به کسی اطمینان داشتند از همه چیز خود چش منتها در گذشته شاید تعبدی بود و امروز دانسته و سنجیده و فهمیده. ماکان استعداد خداداد را پرورش داده بود. او بود که وسایل عظیمت بچه باغبان دربه در را به اروپا و تحصیل وی را در پاریس فراهم کرد. روزی از مهرانو پرسیدم چرا انقدر شیفته ای استاد ماکان است؟ گفت من ماکان را ندیدم، اما بنابر آنچه چه خدا داد میگوید استاد را بهتر از خود او می شناسم. چطور او را میشناسی؟ چه جور آدمی است؟ گفت شما که او را دیده اید گفتم من یک بار بیشتر با او روبرو نشدم مرد خودخواه و خشنی به نظر من آمد گفت اینجور نباید باشد گفتم تا بگویید گفت به شما میگویم اما خوداداد میل ندارد که کسی درباره این مطلب صحبت کند برای اینکه خطرناک است ممکن است استاد را در تهران بگیرند اما شما به هیچکس نگویید من هم همه اش را نمیدانم. یادتان می آید که چند سال پیش 20 نفر محصل و معلم و طبیب را در تهران و بعضی از شهرهای دیگر گرفتند. یکی از کسانی که قرار بود گرفتار شود و هنوز هم شهربانی به دنبال اوست همین خدا داد است. ماکان نجاتش داد. یک هفته او را در منزل خودش پنهان کرد. بعد به یکی از دهات تهران که متعلق به یکی از دوستانش بود فرستاد. در زن برای خدا داد یک سجل جعلی درست کرد. همین که رئیس شهربانی عوض شد و آبها از آسیا افتاد، تذکره برایش گرفت و او را به فرنگستان فرستاد. خدا داد اسم حقیقی او نیست. اسم حقیقیش را به من هم نگفته. مدتی خرجش را میداد تا اینکه از تهران به وسیله همین استفانای نقاش ایتالیایی اقدام کرد. و استفان او را در مدرسه هنرهای زیبا پذیرفت و تصدیقی بهش داد. این تصدیق باعث شد که وزارت فرهنگ او را جواز دولتی به حساب بیاورد. مرتب خرج تحصیلش را میگرفت و زندگی بدی نداشت زندگی خوبی میتوانست داشته باشد اما او بیشتر پولش را خرج همین روزنامه و رساله چاپ کردن میکند گفتم من هیچ باور نمیکردم که استاد یکچنین آدم زرنگ و بیپروایی باشد عجب آدم ناتویی است مهرباناو گفت برعکس استاد ماکان خیلی آدم عجیبی است بگذارید خود خدا داد برایتان تعریف کند.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 مبادا کسی از سفارت ما دو نفر را با هم ببیند و مرا به تهران احسار کنند و خرج تحصیلم قطع شود. سفارت به همه دانشجویان ایرانی بخشنامه کرده که با او آماده شد نکند. همه اهل سفارت عقیدهشان این است که فقط او محصلین ایرانی را از راه به در میبرد و به فکر سیاست میاندازد. پرسیدم چطور شد که خرج تحصیل او را قطع کردند؟ گفت سر همین مقالاتی که در فرانسه نوشتند گفتم مگر این مقالات رو خداداد داد می نوشت. گفت نه خیر. مقالات رو اون می نوشت. اما پسره ای بود به نام غیرت این جاسوس سفارت بود. میآمد از شاه و دولت پیش بچه ها بدگویی می کرد و بعد وقتی کسی چیزی می گفت چند تا هم روش می و به سفارت گزارش میداد. در بردو از دکان مردم یک جعبه عکاسی کاسی دستید و سما حبسش کردند و روزنما های بردو این واقع رو نوشتن. روزنامه پیکار خبر روزنامه های بردو را تحت عنوان جاسوسان سفارت را بشناسید نقل کرد سر این موضوع ما بین دانشیان ایرانی جر و شد بسیاری باور نمیکردند خداداد بیاحیاتی به خش داد و نسخه روزنامه بردو به اسم لاویکس بردو را که در آن داستان دزدی غیرت نقل شده بود پیدا کرد و به همه نشان داد معلوم است پسر سر این موضوع با خداداد لج افتاد و کی را به دل گرفت بلاخره غیرت مجبور شد با تحصیلات ناتمام به ایران برگردد و پس از یک سال به پاس خدماتی که در فرانسه به آبروی کشورش کرده بود رئیس تعلیمات عادیه وزارت فرهنگ شد و از آنجا گزارش محرمانه او مستقیم به دربار داد و در نتیجه خرج تحصیلش را قطع کردند من از ته در شیفته این پسر و دختر شدم با چه جرأتی با هم کار میکردم هیچ کدام در فکر نبودن که بالاخره همیشه اینجور نمیشه زندگی کرد. مهربانو میگفت، وقتی تحصیلم تمام شد به ایران برمیگردم از او پرسیدم با خدادات چه میکنید؟ میگفت، او هم خواهد آمد. میگفتم، آخر با این اوضا که اگر بیاید حبسش میکنن. میگفت مگر اوضا همیشه اینطور میماند. امید به آینده شیرین ترین دلداری آنها بود. اقلا هفته دو سه بار با آنها سر می زدم گاهی به او کمک می كردم نقش نگار حواشی مینیاتور را برایش می کشیدم هایی را که می خواست به ایران بفرستد لفاف می کردم و به پست می رساندم وقتی حس کردم که از حیث پول در زحمت است و زندگیش با فروش مینیاتور نمی گذرد با پست هر دفعه 200 فرانک برایش فرستادم چندی بعد یک روز به خانهاش رفتم دیدم روی تخت افتاده و تمام بدنش ورم کرده است معلوم شد که کبدش ناخوش است پول نداشت که پیش دکتر برود همین که وارد اتاق شدم به مهربانو گفت خب مهری حالا اگر تو بخواهی بروی مانه ای ندارد شما وقت دارید یکی دو ساعت اینجا بمانید گفتم من هیچ کاری ندارم و اگر وقت نداشتم هم حاضر بودم تمام شب را پیش شما بمانم او مهری میبینی چه می‌گوید ها حسودیت نمی مهربانو گفت خودت را لوس نکن ببین تو چقدر بدی همین که رفت گفت من بی پول شدم. می توانید کمی به من قرض بدهید؟ گفتم هرچه چه دارم میدهم. پرسید چقدر دارید؟ گفتم در بانک مقداری دارم. الان هم 2300 فرانکی دارم. گفت ببین درست چقدر پول داری؟ نگاه کردم 275 فرانک پول داشتم. آنها را درآوردم و به اون نشان دادم و گفتم همش را بردارید. قیافهش تیره شد. ابروهایش رو در هم کشید و گفت بلند شوید در آن چمدان را که زیر تخت خواب است باز کنید دو تا پاکت آنجاست بدهید به من بطاعت کردم خط خودم را روی پاکت ها فوری شناختم همان دو پاکتی بود که به وسیله پست برایش فرستاده بودم آنها را باز کرد و 400 فرانک را در آورد و گفت بفرمایید این پول ها مال شماست دیگر برای من پول نفرستید این پول مال من نیست دروغ نگویید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 چون یک ساعت و نیم بلکه بیشتر تنها حرف میزد. اما این را می‌دانم که وقتی از خانه ای او بیرون آمدم، تصمیم قطعی خود را گرفته بودم الان سعی می‌کنم به شما بگویم که به من چه گفت و چگونه زندگی مرا در هم ریخت من آن روز خود را به اونشان نشان دادم تمام گره و گلوله هایی که در حفره های دل من بود حل شد سریع هم به شما می‌گویم پس از آن روز این دومین بار است که دارم دل خود را بی پرده به کسی نشان می دهم. بدبختی من همین است. استاد ماکانی مرد انقدر ناترس و فداکار بود و دلهای مردم را در اختیار داشت. نخواست و یا نتوانست ادراک کند که در اعماق روح من چه قوای شیطانی و در عین حال چه نیروهای انسانی با هم در حال ستیزند اما او این پسره پرشور که فقط دو سال از من بزرگتر بود مرا مثل جوجه ای توی مشتش گرفت. نفس مرا بند می آورد. اما همین که دستش رو باز میکرد و من میتوانستم هوای آزاد را استنشاخ کنم، آن وقت تمام نوازشی که در دست او بود، میچشیدم نگفتم به شما که من درو در یک جز بودم. او میتوانست فرشته ای را که در من بود پرورش دهد. اما استاد شما فقط اجده را در من پروراند. به من گفت، دلت به حال من سوخ که به من پول دادی؟ اگر راست میگویی چرا دلت به حال آن که پدرت در تهران لغمه را از دهانشان از دهان بچههای گرسنهشان بیرون میکشد نمیسوزد مدتی با من صحبت کرد کلماتش به دل من مینشست و من خوب احساس میکردم که برادران و رفیقانه دارد مرا از گردابی که در آن گیر کرده بودم نجات میدهد اول راجب نقاشی من صحبت کرد به من گفت ممکن نیست توانی هنرمند قابلی بشوی آخرین یک سنگلاخ پرخطری است تو هرگز زجر ناکامی رو نچشیده ای. در محیطی که در تهران پرورش یافته ای در حلقه ای که اینجا دور خود کشیده ای نمیتوانی هنرمند بشوی. کسی که در عمرش گرسنگی نکشیده، کسی که از سرما نلرزیده، کسی که شب تا سحر بیخواب نمانده، چگونه ممکن است از سیری، از گرما، از پرتو و آفتاب صبح لذت ببرد؟ یک بار رفتی پیش استاد ماکان. به تو بی کرد. بسیار خوب. چه توقعی داشتی؟ چه برای او هدیه برده بودی؟ میخواستی تو رو ببوسد دامن تو رو بگیرد؟ تو هنوز پنج سال هم نیست که داری نقاشی میکنی و هنوز هیچ چیز نشده میخوای شاهکاری بسازی؟ گفتم نه صحبت از شاهکار ساختن نیست من تنبل هستم من از خود منشه اثری نمیتوانم باشم ببین من زیر دست تو هر کاری که بگویی میکنم اما خودم به ذاته نمیتوانم کاری کنم از این جهت ناامید هستم مکرر تصمیم گرفتم که بنشینم و زحمت بکشم اما نمی یک سوت جوانک ولنگاری که از زیر پنجرهی من رد می شود به آلم بیاری می کشد. بکی این حرف رو بزنم. گفت بسیار خوب تنها راه خوشبختی نقاش و هنرمند شدن نیست. چه همیت دارد. همانطور که هزار راه به پستیونیستی منتهی می شود راه توالی هم تنها هنرمندی نیست. خیال میکنی که به ذاته نمیتوانی کار کنی. بیا برو تا دیگران به تو کمک کنند تا بتوانی از جلی که طبقه تو را در آن بیرون بیایی بیا برو به ایران برو بیشه استاد آنجا زیر دست او کار کن اما با تواضع او نزدیک شو مردم مملکت ما انقدر بیچاره و محتاج به مساعدت هستند که تو از هزار راه می توانی سودمند باشی شاید همین دردی که امروز تحمل میکنی راه نجات تو باشد برای اینکه هنرمند بشوی باید حتما انسان باشی تو هنوز نمیدانی که مردم هم تو در چه مرحله‌ای از زندگی به سر می برن؟ بیا برو رو به ایران آدم شو شاید راه موفقیت را بیابی آخر زندگی که فقط وجود خود تو نیست حالا که نتوانست اجدههایی را که خودت را میخورد در پرده نقاشی جلوه گر کنی بیا و اجدهها را در زندگی اجتماعی مردم ایران بکش و این موفقیت تو که در نتیجه آن هزاران نفر مردم ایران رهایی خواهند یافت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 بخواه که پیش او کار کنی، برو به ایران، برو پیش نه نبا قرور و تکبر، بلکه با خوزو و از خود گذشتگی، به او بگو که چهار پنج ماهی همکار من بوده ای. بگو. من تصمیم خود را یکی دو روز بعد گرفتم. آقای نازم، رمز آنچه استاد در این پرده در چشمهای این صورت گنجنده در همین تصمیم است از همین جا اشتباه کرد.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 و یا اینکه به ایران آمدم که زندگی ای پیش بگیرم و انسان مفیدی باشم این را نمیدانم و او هم مردی که میتوانست زندگی مرا قالب گیری کند او هم اول مردد بود اما با این چشمهای هرزهای که در این صورت از من کشیده بزرگترین توهین را به من روا داشته او خیال کرد که من برای بدبخت کردن و او به قصد انتقام به ایران آمدم نزدیک بود که بغز گلوی زن ناشناس را بگیرد اما از جا برخواست ساعت ده شب بود سکینه رو صدا زد و پرسید شام حاضر است؟ سکینه گفت بله خانم است که شام حاضر است بفرماید آقای نازم